پس امام خمینی سالها از ایران دور بود و از خارج از ایران به مبارزات خود ادامه میداد. بله امام حدود چهارده سال از ایران دور بود اما همواره وزره آگاهی و بیداری را در مردم می پاشید امام خمینی چگونه به ایران آمد؟ وقتی که مبارزات مردم به اوج خود رسید شاه از ایران رفت پس از آن ده روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی به ایران بازگشت فیلم هایی از آمدن امام خمینی به ایران دیده هم. استقبال مردم از ایشان بینظیر بود بله پدرم هم از شیراز برای استقبال از امام خمینی به تهران آمده بود او خاطره خوشی از اون روزها دارد چرا انقلاب اسلامی را بزرگترین رویداد ایران در قرن بیستم اند؟ برای اینکه انقلاب ایران دین را زنده کرد و نه تنها ایران بلکه جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد پس از پیروزی انقلاب چگونه نوع حکومت ایران تعیین شد امام خمینی نظام جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرد و مردم تیه که همه پرسی به آن رأی مثبت دادند پس مردم ایران خودشان انقلاب کردند و بعد هم به حکومت مورد نظرشان رأی دادند بله بیش از 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند پس به همین خاطر است که مردم ایران همواره پشتیبان نظام جمهوری اسلامی هستند